کتاب فقط برای تفریح فصل اول تولد یک نرد بخش چهارم نوشته لینوستوروالز و دیوید دیامون ترجمه از جادی اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم فنلاند شاید این روزهای یکی از پیشرفت کشورهای دنیا باشد ولی قرنها قبل این کشور به زحمت چیزی بیشتر از یک توقفگاه برای وایکینگ هایی بود که در تجارت با کنستانتین بودند بعدها وقتی که همسایه های سوئدی خواستند فنلاندی ها را مردمانی سرخ جو کنند اسقف هنری را به آنجا فرستادند. این اسقف متولد انگلیس در 1155 میلادی برای معموریت از سوی کلیسای کاتولیک وارد فنلاند شد. سوئدی های استحکامات استحکامات نظامی فنلاند را تقویت کردند. تا از خود در برابر امپراتوری شرقی یعنی روسیه حفاظت کنند و در نهایت هم نبرد بر سر کنترل فنلاند را از روسها بردند. در طول قرنهای بعدی سوئدیها با پاداش و تنبیه بر اساس زمین و مالیات فنلاندی ها را به کار کشیدند و تا سال 1714 نمایش را اداره کردند. در این سال روسیه با تسخیر فنلاند یک میانپرده هفت ساله را به اجرا گذاشت. بعد سوئد دوباره کنترل این مستعمره را به دست گرفت و تا سال 1809 آن را اداره کرد که طی آن ناپل اون و روسیه با هم به فنلاند حمله کردند و تا سال 1917 که انقلاب کمونیستی روسیه به وقوع پیوست فنلاند بخشی از روسیه بود در این دوره جمعیت نسل اول مهاجران سوئدی به فنلاند به 350 هزار نفر می رسید. این افراد همان سوئدی زبانهایی هستند که این روزها حدود پنج درصد جمعیت فنلاند را تشکیل داده از پخش و پخشوپلای من جد مادری من یک کشاورز نسبتاً فقیر از جاپو بود یک شهر کوچک در کنار شهر واسا او شش پسر داشت که حداقل دوتای آنها مدرک دکترا گرفتند این مسئله چیزهای بسیاری را در مورد امکان پیشرفت در فنلاند نشان میدهد بله اعصاب آدم از تاریکی فصل زمستان و در آوردن کفش ها موقع ورود به خانه خورد می شود ولی در عوض حق دارید به رایگان مدرک دانشگاهی بگیرید این با آمریکا که در آن بسیاری از بچه ها بدون هیچ امیدی بزرگ می شوند خیلی فرق دارد یکی از آن دو پسر پدربزرگ من یعنی لئو والمار تورنکویست بود همان رفیقی که من را به دنیای کامپیوتر معرفی کرد میرسیم به chat پدریم این همان آدمی است که اسم توروالد را برای اسم وسط خود اختراع کرد اسم او اول توروالد الیس ساکسبرگ بود پدر بزرگ من بدون پدر متولد شده بود ساکسبرگ اسم دوران دوشیزگی مادرش بود و بعد از آشنایی مادرش با آقای متشخصی که جدن در نهایت با او ازدواج کرده بود کارانکو نامیده می شد. فارفار یعنی پدر پدرم این آقا را دوست نداشت و در نتیجه اسمش را عوض کرد او اسم آخرش را حصف کرد و با این نظریه که یک اسم شخصیت بیشتری به اسم وسطش میدهد، یک اس به انتهای آن اضافه کرد توروالد به خودی خود یعنی سرزمین تور بهتر بود پدر بزرگم برای ساختن یک اسم جدید از صفر شروع کند چون اضافه شدن یک اسم معنای اصلی اسم را از بین می برد و هم سوئیدی ها و هم فنلاندی ها را در مورد شیوه تلفظ این اسم گیج می کنند. آنها فکر می کنند که اسم باید توروالز نوشته شود. در دنیا 21 توروالز هست و همه با من فامیلند. همه ما در این سردرگ گمی شریک هستیم. شاید به همین خاطر است که در اینترنت من همیشه لینوس بودم. توروالز گیج کننده است. این پدربزرگ در دانشگاه تدریس نمی کرد یک نگار و شاعر بود. اولین شغل او سردبیری یک روزنامه محلی کوچک در 100 کیلومتری هلسینکی بود. او به خاطر زیاد روی در نوشیدن به هنگام کار اخراج شد. ازدواجش با مادر بزرگ هم هم به هم خورد. با وجود مشکل همیشگیش با مشروب به شهر تورکو در جنوب فنلاند رفت و در آنجا سردبیر یک روزنامه شد و چند کتاب شعر هم منتشر کرد. ما برای کریسمس و عید پاک پیش او میرویم و سری هم به مادر بزرگ می زنیم. فارمار مارتا در هلسینکی زندگی می و به خاطر پختن پنکیک های عالی شهرت دارد فارفار پنج سال پیش درگذشت. قبول من هیچ وقت هیچ کدام از کتابهایش را نخواندم این واقعیتی است که پدر همیشه به غریبه ها متذکر می شود روزنامه نگار همه جای خانواده من پراکنده هن. بر اساس افسانه های خانوادگی، یکی از اجداد من، ارنس فون وندت، روزنامه‌نگاری بود که به خاطر طرفداری از سفیدها در جنگ های داخلی فنلاند که منجر به استقلال ما از روسیه در 1917 شد، توسط سرخا دستگیر شد. باشه، کتاب های این یکی را هم نخوندم، ولی همه میگوین چیزهای زیادی را از دست ندادن. پدرم نیلز که همه او را به اسم نیک میشناسن، یک روزنامه نگار رادیو و تلویزیون است که از دهه 1960 و دوره دبیرستانش عضو فعال حزب کمونیست بوده است اولین گرایش های سیاسی او موقعی به وجود آمد که خبردار شد در فنلاند خشونت های علیه طرفداران کمونیسم در جریان است چند دهه بعد پذیرفت کشیفتگیش به کمونیسم شاید محصول خامندیشیش بوده باشد او مادر من آنا که به میکی هم شهرت داشت را موقعی ملاقات می کند که هر دو دانشجوهای شورشی دانشگاه های دههی 1960 بودند. داستان این است که آنها برای شرکت در یک گلگشت کلوپ دانشجویان سعیدی زبان که پدرم مسئولش بود به بیرون از شهر رفته بودند. پدرم که برای جلب توجه مادرم یک رقیب پیدا کرده بود در موقع برگشت رقیب را مسئول نظارت بر سوار شدن همه بر اتوبوس کرد و با استفاده از این فرصت خودش کنار مادرم نشست و او را متقاعد کرد تا با او به خانه بیاید و مردم من را نابغه فامیل می‌دانند. من که ما در بین تظاهرات درون دانشگاه و احتمالا با موسیقی جانی میشل در پس زمینه متولد شدم آشیانه اشق خانواده من اتاقی در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم بود سبد لباس های چرک ما اولین ننووع من بود خوشبختانه به خاطر آوردن آن دوره کار راحتی نیست در حالی که من سه ماه بیشتر نداشتم پدرم ترجیح داد به جای رفتن به زندان به عنوان یک آدم با وجدان تن به ثبت در خدمت سربازی 11 ماهه بدهد او آنقدر سرباز و تیرانداز خوبی از آب درآمد که می توانست دائما از مرخصی آخر هفته استفاده کند خاطرههای های خانوادیگی می گویند که خواهرم سارا در همین دوره به وجود آمد. مادرم در مواقعی که مشغول رسیدگی به دو بچه کوچکش نبود به عنوان ویراستار اخبار خارجی خبرگزاری فنلاند کار می کرد. این روزها او ویراستار تصاویر است. این همان خانواده روزنامه نگاران است که من به شکل معجزه آسایی از آن جان سالم بدر بردم. سارا دفتر خودش را دارد، که در آن گزارش های خبری را ترجمه می کند و همچنین با خبرگزاری فنلاند نیست همکاری دارد برادر ناتنی من ل تور از آن آدم های سینماست که می خواهد روزی فیلم خودش را کارگردانی کند از آنجایی که همه افراد خانواده من روزنامه نگار هستند احساس می کنم محق هستم در این باره که آنها مردود هستند شوخی کنم میدانم با گفتن این حرف آدم مزخرفی به نظر می‌رسم، ولی در این سالها خانه مادر فنلاند به اندازه کافی سهمش را به خبرنگارانی که برای ساختن خبر به آن هجوم آوردند و کسانی که اصولا خودشان از هیچ خبر ساختند و همه آنهایی که همیشه به نظر میرسد کمی زیادی نوشیدند ادا کرده است. خبرنگاران زیاد می نوشند. این آن موقعی است که باید در اتاق خواب مخفی شد. شاید هم مادر وضعیت احساسی مناسبی ندارد. ما در یک آپارتمان دو اتاق خوابه در طبقه دوم یک ساختمان رنگ زرد در استراروبرستگاتان در روتبرگن زندگی می کنیم که ناحیه کوچکی در همسایگی مرکز هلسینکی است سارا و برادر نفرت انگیزش که شانزده ماه از او بزرگتر است در یکی از اتاق خوابها زندگی می کنند کنار خانه یک بوستان کوچک هست که به نام خانواده سیمبریچوف که یک آب محلی دارن نامگذاری شده است این مسئله همیشه به نظر من عجیب بوده ولی واقعا چه فرقی هست بین این اسمگذاری و اسمگذاری یک استادیوم بسکتبال به نام یک تولید کننده لوازم دفتری چون یک بار یک گربه در این پارک دیده ایم پارک سیمبریچوف در خانواده ما پارک گربه نامیده می شود یک خانه مخروبه هم هست که کبوترها در آن لانه می کنند پارک روی یک تپه ساخته شده و در زمستان محل سرسوره بازی است. محل دیگر بازی حیات سیمانی پشت ساختمان ما است. وقتی قایم موشک بازی می کنیم بالا رفتن 5 طبقه توسط نردبان و رسیدن به سخت بسیار مفرح است. ولی هیچ تفریحی به پای کار با کامپیوتر نمی رسد. حالا که کامپیوتر در خانه است می شود همه شب را بیدار ماند. همه پسرها شب را با خاندن پلی بوی در زیر پتو بیدار می ماند. در عوض من خودم را به خواب می زدم تا مادرم سراغ کارهای خودش برود و بعد از تخت بیرون میپریدم و پشت کامپیوتر می نشستم. این قبل از دوره چتروم ها بود. لینوس وقت غذا است. بعضی وقتها حتی غذا را هم بیفیال می شدید. بعد مادرتان شروع می کرد به تعریف این داستان برای همکارانش که شما بچه بسیار کم دردسری هستید و تنها کاری که برای راضی نگه داشتنتان کافی است این است که شما را با یک کامپیوتر در یک کمد تاریک بیاندازند. و گاه‌گداری هم کمی ماکارونی خشک برایتان بگذارند خیلی هم بیراهه نرفته هیچ کس نگران این نبود که این بچه را بدزدند اصلا کسی متوجه می شد؟ بدون شک کامپیوترها در آن دوره ای که کمتر پیچیده بودند برای بچه ها مناسبتر بودند. آن روزها هر تازه کاری مثل من می توانست کاپوت کامپیوتر را بالا بزند و موتورش را بررسی کند. حالا که کامپیوترها پیچیده تر شده اند، دیگر هر کسی نمی تواند به راحتی کاپوت را بالا بزند و موتور را پیاده و سوار کند و در نتیجه دیگر نمی تواند یاد بگیرد که این ماشین ها دقیقا چطور کار می کند. آخرین باری که خود شما موتور ماشینتان را باز کردید، و کاری پیچیده تر از تعویض فیلتر روغن کردید کی بود. این روزها به چا ها به جای ور رفتن با موتور استار کامپیوتر آنقدر با آن بازی می کنن تا عقلشان را از دست بدهن. البته مشکلی با بازی های کامپیوتری ندارم در اصل اولین برنامه های خودم هم بازی ها بودند. در یکی از آنها شما یک زیردریایی کوچک را در طول یک غار زیر آبی کنترل می کردید. یک مفهوم کاملا استاندارد برای بازی، کل جهان از راست به چپ حرکت میکرد و بازیکن در نقش زیردریایی باید بالا و پایین رفتن از برخورد با دیواره های غار و ماهی های بزرگ جلوگیری میکرد. ماهی ها هم با کل جهان حرکت میکرد و حرکت مستقلی نداشت. همانطور که بازی ادامه پیدا میکرد، حرکت سریع و سریعتر و عرض غار کم و کمتر میشد. در این بازی نمیشد برنده شد و اصولا هم برنده شدن هدف بازی نبود. شد یک هفته ای با بازی کردن تفریح کرد و بعد باید به سراغ بازی دیگری می رفتید. برای من تمام مسئله سر این بود که بتوانم برنامه این بازی را بنویسم و بعد سراغ برنامه بعدی بروم. اسباب بازی های دیگری هم هست مثل هواپیماها، خودروها، کشتی ها و قطارهای مدل. یک بار پدر یک قطار مدل گران قیمت آلمانی برایم خرید. دلیل این کارش این بود که خودش هیچ وقت در دوره بچگی قطار مدل نداشت. و معتقد بود که این میتواند یک سرگرمی خوب مشترک بین پدر و پسر باشد. چیز جالبی بود ولی نمی با کامپیوتر رقابت کند. محروم شدن از کار با کامپیوتر هیچ وقت به خاطر کار زیاد با آن نبود بلکه دلایل دیگری مثل دعوا کردن با سارا داشت. در طول مدارس ابتدایی و دبیرستان شما همیشه مشغول رقابت با همدیگر هستید. به خصوص در مورد دروس اصلی رقابت حاصل خوبی داشت. بدون متطک های من سارا هیچ وقت انقدر انگیزه پیدا نمیکرد که برای جلو افتادن از من به جای 5 مقاله لازم برای فارغ تاثیر شدن از دبیرستان فنلاند شش مقاله بنویسد. در طرف مقابل من باید به خاطر اینکه انگلیسی هم قابل فهمیدن است از سارا متشکر باشم. او همیشه انگلیسی من را که در اصل مخلوط فنلاندی انگلیسی بود دست میانداخت. به همین دلیل پیشرفت کردم. حالا که بحث به اینجا رسیده این را هم بگویم که مادرم هم معمولا من را دست میانداخت. البته نه به خاطر انگلیسی برای این موضوع که هیچ وقت علاقه من نبودم دخترهایی که میخواستند نابغه ریاضی به آنها درس دهت را به خانه بیاورم. در آن دوره ما با پدر و دوست دخترش زندگی می‌کردیم. بعضی وقتها هم سارا با پدر زندگی می‌کرد و من با مادر. به هر حال زبان سوئدی کلمه‌ای برای خانواده بد کار کرد ندارد. به خاطر طلاق پول زیادی نداشتیم. یکی از روشنترین خاطراتم مربوط به زمانی است که مادرم مجبور شد تنها داراییش را به گرو بگذارد. یک سهم از شرکت مخابرات هلسینکی که به خاطر داشتن یک خط تلفن هر شهروند صاحب آن شود احتمالاً ارزشش چیزی حدود 500 دلار بود. و هر بار که دوچار مشکل مالی می شدیم باید سند آن را به مرکز می بردیم یادم هست که یک بار با مادرم رفتم و کلی خجالت کشیدم. حالا من یکی از اعضای هیئت مدیره آن شرکت هستم. در اصل تنها شرکتی است که من عضو هیئت مدیره هستم. یادم هست که یک بار دیگر هم احساس خجالت کردم. وقتی که برای خریدن اولین ساعت مچی‌ام پول جمع کرده بودم و مادرم از من خواست که از پدر بزرگ بخواهم بقیه پول ساعت را تقبل کند. ای هم بود که طی آن مادر شبها کار می کرد و من و سارا باید تهیه غذای خودمان را بر عهده گرفتیم. مادر میخواست که ما به مغازه کنار خانه برویم و با حسابی که داشتیم مواد غذایی بخریم ما به جای غذا تنقلات میخریدیم چون تا دیر وقت پای کامپیوتر نشستن و تنقلات خوردن فوقالعاده بود در شرایط مشابه بقیه پسرها بیدار میماندن و روی لحاف پلیبوی میخاندن کمی بعد از اینکه که پدر بزرگ سکته کرد مرمور یعنی مادر مادرم هم دیگر مواظبت از خودش را فراموش کرد او به خاطر چیزی که خودش کسلی می برای ده سال در یک خانه سالمندان بستری شد دو سالی که از تاریخ بستری شدنش گذشت ما به آپارتمانش اسباب کشی کردیم خانه‌ای در طبقه اول یک ساختمان قرص و محکم مربوط به دوران روسیه که کنار یک پارک زیبا در نزدیکی اسکله هلسینکی واقع شده بود ساختمان یک آشپزخانه خانه کوچک و سه اتاق خواب داشت سارا اتاق بزرگتر را برداشت. پسر خلافی که با یک کمد تاریک و کمی پاستای خشک و یک کامپیوتر خوشحال می میشد، به کوچکترین اتاق رفت. پنجره ها را با پارچه های تیره مشکی پوشاند تا نور آفتاب به داخل اتاق سرک نکشد. کامپیوتر هم روی یک میز کوچک در فاصله نیم متری تخت خواب قرار گرفت. وقتی که سردبیر مجله چند of مرکوری نیوز در بهار 1999 از من خواست تا گزارشی در مورد لینوس به بنویسم به سختی از وجود همچین آدمی اطلاع داشتم. از بهار سال قبل کلمه لینوکس بیشتر و بیشتر شنیده میشد. یعنی از موقعی که چند شرکت با پیشقدمی نتسکیپ شروع به پذیرش مفهوم بازمت برای نرمافزارها و حتی سیستم های خود کرده بودند. البته قبل از این هم من در مورد لینوکس شنیده بودم. در اوایل دهه 1990 من ویراستار نشریه مرتبط با یونیکس و نرم افزارهای باز بودم و در نتیجه جمله‌ای از یک منبع درباره اسم لینوس در ذهنم وجود داشت. این منبع می گفت که لینوس یک دانشجوی فنلاندی است که یک نسخه قوی از یونیکس را در خوابگاهش نوشته و آن را به رایگان در اینترنت پخش کرده است. این منبع چندان هم دقیق نبود. دلیل زنگ زدن سردبیر این بود که لینوس برای یک سخنرانی و شرکت در جلسه آشنایی با لینوکس به شهر ما یعنی سنجازه آمده بود سردبیر با گفتن اینکه ما امروز اینجا یک فوق ستاره داریم و فکس کردن چند بریده روزنامه درباره لینوس من را مأمور نوشتن این گزارش کرد Linus دو سال قبل به سیلیکون ولی آمده بود برای شرکت ترنس که آن روزها شرکتی با پروژه های مخفی بود کار میکرد. این شرکت سالها مشغول توسعه یک ریز پردازنده بود که قرار بود صنعت کامپیوتر را متحول کند. شغل او به شکلی بود که اجازه میداد کماکان به فعالیت بسیار وقت گیر تصمیم گیرنده نهایی بودند در هر تغییر پیشنهاد شده در لینوکس ادامه دهد. لینوس همچنین وقت کافی داشت. تا به عنوان یکی از مشهورترین چهره های جنبش تازه جوانه زده نرم افزارهای به سر, سر دنیا سفر کند. او مشغول تبدیل شدن به قهرمان یک فرقه جدید بود. در حالی که بیل به عنوان الهی انتقام همه در حال زندگی در زنادو مجلل خود بود، لینوس با همسر و دخترهای تازه پایش در یک مجتمع فشرده در سانتا کلاوس زندگی می‌کردند. او به وضوح به ثروت عظیم که بر سر برنامه نویسان کم استعدادتر در حال باریدن بود بی اعتنائی می نفس حضور لینوس معمای حل نشدنی بود برای دیگر ساکنان سیلی‌کون ولی که تنها انگیزهشان میزان سود سهام‌های بورس بود چطور شخصی با این همه استعداد نسبت به ثروتمند شدن بی‌اعتنا است دسترسی به لینوس راحت نبود به پیام های صوتیش گوش نمیداد و به ندرت پیش می‌آمد که ایمیلی را جواب دهد هفته‌ها طول کشید تا او را پای تلفن بکشم ولی وقتی این کار انجام شد براحتی پذیرفت که در اولین وقت خالیش مصاحبه کند. یک ماه بعد در میه 1999 با این احساس هرفهی که بهتر از مصاحبه در محیطی نزدیک به روحیات مصاحبه شونده انجام شود تصمیم گرفتم که محیط پس زمینه مقالم یک سونای فنلاندی باشد. در یک مستانگ ای که عکاس من رانندهاش بود به سمت سانتا کروز و سنایی راه افتادیم که به عنوان بهترین سونای فنلاندی منطقه به ما پیشنهاد شده بود این سونا کنار یک منطقه مختص لختی ها بود وقتی از در ورودی دفتر ترنسمتا در یک ساختمان بدون نام بیرون آمد یک قوطی کوکای باز شده در دستش بود لباس رسمی برنامه نویس ها یعنی یک شلوار جین تیشرت های پخش شده در کنفرانس ها و ترکیب جدانه شدنی جورا و صندلی هایش را داشت که ادعا می کرد حتی پیش از اینکه یک برنامه نویس دیگر را با آنها ببیند به آن علاقه بوده است وقتی در مورد ترکیب جورا و سندل پرسیدم جواب داد که باید یکی از قوانین طبیعی مربوط به برنامه نویس ها باشد همین که سوار شد اولین سوال یک جور فرافکنی بود در حالی که داشتم با ضبط صوت ور می رفتم از لینوس پرسیدم اطرافیانت هم همه اهل فناوری هستند؟ جواب داد نه، اکثرا روزنامهنگار هستند و اضافه کرد به همین دلیل میدانم چه هایی هستید. میدانست که با این جواب نمیتواند در برود. جواب دادم آه، پس تو از یک خانواده تفاله هستی. بهترین برنامه نویس جهان آنقدر شدید خندش گرفت که یک قلوب کوکا به پشت گردن عکاس راننده من پاشید. قرمز شد. این می توانست شروع یک بعد از ظهر به ماندنی باشد. جریان پیسیده هم شد. فنلاندی ها تعصب خاصی نسبت به سناهایشان دارند. و این اولین بازدید لینوس از یک سنای فنلاندی در طول سه سال اخیر بود. فوق ستاره رنگ پریده و لخت با اینکه هایی که بخار گرفته بودند روی بالاترین پله سنا نشسته بود. و در حالی که موی خیصش روی پیشانیش آمده بود عرق از فرق سرش به سمت چیزی میریخت که من با کمی بدجنسی آن را کلنگ می نامیدم اطراف او پر از آدمهای خودپسند و آفتاب بود که درباره چیزهای بیهمیت بحث میکرد. او به نظر فراتر از اطرافیانش می رسید و با اشتیاق در حال توضیح دادن درباره خواص اثبات شده سونا بود. می توانستید لبخند نشاط را روی صورتش ببینید. نظر من این است که در بیشتر موارد مردم در سیلیکون ولی شادتر از هر جای دیگر هستند. چون آنها در پشت میز فرمان انقلاب اقتصادی نشستند. از این مهمترین که آنها همه پولدار هستند. چه نیو ولی چه اولد ولی اما هیچ وقت نمی کسی در اینجا بخندد. حداقل خارج از حصار دفترش. اولین خواسته معتبرترین افراد در فناوری و حتی آنهایی که اعتباری ندارند این است که شما متوجه شوید چقدر استثنایی هستید و اینکه بفهمید آنها یکی از مهمترین بازیگران معموریتی هستند که حتی از معموریت برقراری صلح جهانی هم مهمتر است این صحبت درباره لینوس صدق نمی کرد در حقیقت عدم خودپسندی لینوس باعث میشد سرآمد جمع غزا افگوی سیلیکون ولی باشد بالاتر از میلیاردرهای شاغل در فنناوری بالا. او بیشتر از یک گوزن شمالی که در روشنایی های کرده باشد شبیه به یک آدم فضایی بود که به زمین آمده تا غیر اقلانی بودن روش هایی که برگزیدهام را به ما گوش زد کند. و احساس من این بود که چندان هم موفق نشده است. لینوس قبلا به من گفته بود که یکی از بخش مهم مراسم سنای فنلاندی این است که بعد از سونا بنشینیم و در حال نوشیدن آبجو درباره مسائل جهان گپ بزنیم. برای کسب آمادگی چند قوطی فوسترز را در بوته ها مخفی کرده بودیم. ها را پیدا کردیم و در یک هوسچه آب گرم ساکت نشستیم و در حالی که عکاس عکس گرفت مشغول نوشیدن شدیم. کشف کردم که لینوس برخلاف انتظار من اطلاعات بسیار خوبی درباره تاریخ اقتصاد آمریکا و سیاست های جهانی دارد به نظر او اگر شرکتها و سیاستمداران مداران امریکایی شیوه میانجگرانه سیاست اروپایی را پیش می وضع بهتری در جهان داشتند عینکش را در آب گرم فرو کرد تا تمیز شود و توضیح داد که در حقیقت نیازی به عینک ندارد ولی از دوره بلو با این تصور که عینک باعث می شود دماغش کوچکتر به نظر برسد از آن استفاده کرده است در همین موقع یک کارمند زن با لباس کامل به کنار حسیه آب گرم ما می آید و دستور می دهد که آبجوهای ما را تحویل دهیم چون نوشیدن آنها در این محیط ممنوع است تنها گذینه باقی مانده دوش گرفتن، لباس پوشیدن و پیدا کردن یک کافه برای ادامه گفتگو است بیشتر این کسانی که در سیلیکون ولی میبینید بسیار شیفته خودشان هستند آنها موقع حرف زدن انقدری جدی روی شرکت خود یا محصول فوقلادهی که در حال تولید کردنش هستند یا صنعت مورد علاقهشان تمرکز میکنند که انگار هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد هیچ کس نمیتواند حلقه بی پایان صحبت آنها درباره خودشان را بشکند اما ما آنجا در یک آبجو فروشی کوچک زیر آفتاب نشسته بودیم و حین مزه مزه کردن گادا فول با لینوس که مثل یک قناری مشغول اقرار کردن به اعتیادش به موسیقی راک کلاسیک و دین کنت عشقش به کمدیهای احمقانه تلویزیونی و اسرار خانوادگی بود، گپ میزدیم. و او هیچ علاقه‌ای نداشت که به حلقه صاحبان پول و قدرت وارد شود. از او پرسیدم که در یک ملاقات فرضی دوست دارد چه چیزی به بیل بگوید و جواب داد که اصولا علاقی به این ملاقات ندارد میگوید نقطه اتصال چندانی با هم نداریم من هیچ علاقی به چیزی که او در آن بهترین در دنیا است ندارم و او هم هیچ علاقی به چیزی ندارد که ممکن است من یکی از بهترین های آن در دنیا باشم من نمیتوانم در مورد تجارت به او توصیه‌ای بکنم و او هم درباره فناوری توصیه‌ای به من ندارد. در مسیر جاده کوهستانی که از آن به سانتا کللارا برمیگشتیم یک جیپ چروکی سیاه خودش را به کنار ماشین ما رساند و مسافرانش فریاد زدند هی hey, لینوس و برای گرفتن یک عکس یادگاری از قهرمانشان که در صندلی پشت یک مستنگ رو در باد لبخند میزد دوربینی یک بار مصرف بیرون آوردند هفته بعد درست موقع همان به خانه آنها رسیدم. تازه دختر بلوند یک ساله‌اش را از وان همام سید کرده بود و در حین سید دختر دوم بود. دنبال جایی می‌گشت تا اولی را به زمین بگذارد. بچه اول را به من داد و جیغ بچه بلند شد. تاو که در طول این مدت در اتاق کناری بود، برای کمک به فرزندش به اتاق دوید. زن دوست داشتنی بود و یک بوته خار هم روی بازویش خالکوبی کرده بود. چند دقیقه دیگر همگی مشغول خواندن کتاب‌های کودکانی سعودی و انگلیسی بودیم. تا بچه ها به خواب بروند بعد از اینکه بچه ها خوابیدند همگی به پارکینگ رفتیم و شروع به باز کردن بسته هایی کردیم که هنوز فرصت نشده بود کسی بازشان کند. توروالز بدون اینکه برخورنده باشد دائما توضیح میداد که غیر ممکن است بشود در سیلیکون ولی از پس هزینه یک خانه واقعی با یک حیات خلوت واقعی برامد در آخر کار هم جیل نو نگاه کردیم و مشغول خالی کردن قوطیهای گینز شدیم. این همان زمانی بود که احساس کردم باید از این ماجرا یک کتاب در بیاوریم. پایان بخش چهارم از فصل اول تولد یک نرد. من نیکزاد هستم. مدرس دوره های آموزشی سایت آواسان.